الله الرحمن الرحیم، الفصل الرابع الدليل الرابع القياس فصل 4 یعنی بعد از قران و بعد سنت و اجماع رسيدين به فصل 4 در باب که همون قیاس هست شماره 98 کتاب تعریف القياس القياس في اللغه يطلق على تقدير الشيء بشيء آخر، فیقال قسط آرده بالمتر، آی قدرت به قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن چیزی با چیزی دیگر زمانی که در عربی گفته میشه قسط آرده بالمتر قیاس کردم زمین را با متر، ای قدرت به یعنی اندازش کردم با متر، پس قسط یعنی اندازش کردم قیاس کردن یعنی چی اندازه, اندازه کردن در لغت این معنی لغویش هست و یعنی اندازه گرفتنش و یطلق و ایزاً على مقارنت شیب غیری و همچنین در زبان عربی مقارنه کردن چیزی با چیزی دیگر رو بعض هم میگه چی؟ قیاس آره دو چیزو شما کنار هم میاری برای سنجیدن نسبت به هم دیگر مقارنشون میکنی قرینه همیشون میکنی تا بدونید لعرفه بقدره کل من همه به تا بدونید اندازه هر یکی از این دو چیزو نسبت به اون چیزه دیگر اینو میگن مقایسه کردن نمیگن فقه مقارن یعنی که شما دو تا و کنار هم می‌خونید. تا نسبتشون نسبت به هم دیگر بدونید کدوم قوی تر است و کدوم وفي في الاستلاف إن معناه لغويه قياس بود، أما معنى استلافهش ما هو كي يك فقيه، يمجتهد نجاقه إن ما قياس ثابت شد، منزور القياس شيه. إن معنى استلافه قياس جاست. الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في إلّا ذلك الحكم. لقد داش توشيت. این تعریف اصطلاحی قیاس که شما سعادتی نکته برداری کنید مسائل مهم درس رو بیارید اخو میگه الحاق کردن مسئله ای که برایش نس وارد نشده است در حکم به مسئله ای که برای اون مسئله نس وارد شده است در حکمش ای رو براش نس وارد نشده آیا و حدیث برایش نیومده اومده در حکم ملحقش کنیم به یک مسئلهی مانند خودش که مولی برای اول مسئله چی اومده نس اومده این کارو میگن قیاس چرا این مسئله رو ما ملحق میکنیم ببین مسئله‌ای که براش نهست اومده لشتراک ما في علت ذالك الحق زیرا هر دوتا در علت با همچی هند بشترک هند آقا علت اومده که فلان چیز حراب هست به فلان دلیل به فلان علت حالا همون علت اگر در یک چیز جدیدی یافت شود که براش در نسل ذکر نشده است این هم حکم همون رو میگیره چون همون علتی که فلان مسئله به خاطرش حرام شده یا حلال شده همون علت در جای دیگه هم یافت شد پس اون مسئله هم حکمش رو میگیرد این عمل رو بگن چی؟ قیاس مثلا به اینوانه نمونه شراب انگور حرام است به علت سکران آور بودن به علت مسکنندگی اگر همین علت مسکنندگی در آب خورما در چیزی دیگر یافت شد این هم حکمش رو چکار میکنه؟ حکمش رو میکره اگر شراب انگور به علت مسکنندگی حرام است اگر یک زمانی آبی که از فلان چیز به دست بیاد مسکلنده بود پس هم چه حکمش است؟ حرام. حرامه. بله؟ ولی؟ کی بهت گفته انگور؟ کی؟ دقیق داشته باش. از انگور چه درست می‌کنند؟ شراب. شراب. خب شرابی که از انگور درست میشه به دلیل مسکلندگی حکمش چی است؟ خب اگر شرابی رو از گندم درست کردن که مس می کرد آخه حرام یا نیست؟ نه. چون هر دو تا مسکننده. باج شدی؟ دو دو حرام. انگور حرام نیست، گندم هم حرام نیست. تو کجایی چ... پسر. چی؟ حرام. اگر شرابی ازش به دست بیاید. بله. بله. کسی به شما تو زندگی گفته؟ همین؟ دقیقت بیشتر داشته باشید خب پس الحاق کردن آن که براش نس نیامده است به چیزی که براش چی آمده است نس این کار بگند قیاس به خاطر مشترک بودن در علت به خاطر مشترک بودن آقا پدر و مادر رو اگر انسان با زبان به حرام است خب اگر اومد با کردارش اون رو آزارد حرام چون آزاردن دیگه آزاردنه این علت در هر چیز دیگه یافت شد هر راهی که سبب آزاردنه پدر و مادر شد اون هم چیه؟ ده، ده بله بله فالقياس لا يثبت حكما وإنما يكشف أن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه كما هي موجودة في المقيس عليه خووو حالاك إن ترشد بس ميقى قياس حكمي رو صابت نمي كونه بل كحكمي رو كاشف مي كونه إن حكم همون زمان كي برای مقیس علیه اومده برای مقیس هم وجود داشته ولی قیاس اومده کشفش کرده مثلا از همان زمانی که شراب انگور حرام بوده شراب جو چی بوده؟ حرام بوده ولی ممکنه فقیه بعدا اومده اینو چکار کرده؟ باست. کشفش کرده ولی حرام بودنشون از یک زمانه چرا؟ چون هر دو تا علتشون چیه؟ مشترک بخلی بس کنندگی مثلا موقع که ما قیاس میگیریم شراب جورو و شراب انگور به شراب انگور میگن مقیس علیه به شراب جو چی میگن؟ مقیس این استلحات رو یاد داشته باشید نه؟ به شراب انگور میگن مقیس علیه به شراب جو میگن چی؟ مقیس ببینید اگر این حکم در مقیس علیه موجود بوده از همون زمان که در مقیس علیه موجود بوده در مقیس هم موجود بوده. ولی قیاس اومده چکارش کرده؟ ظاهرش کرده. دیده که علتی که انگور حراب شرابش مسکنندگی مشتهد په برده که همون علت در شراب جو هم وجود داره. پس گفته که این چیه؟ حرابه. از اون روز حرام نشده بلکه از اون روز حکمشی شده؟ کشف شده. فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له وإن عمل المجتهد ينحصر فيما رأفة إلة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيها فيظهر أن الحكم فيهما واحد بقي قياس ظاهر كونان دي حكمة وصابت كونان وعمل نيست أمل مجتهد المجتهد در شناخت إلة حكم وبيان كردن مشترك بودن مقيس ومقيس عليه در علت هست مجتهد ظاهر میکند که حکم در هر دو تا چیه یک همان ترک شراب انگور حرام است شراب جوهر حرام است این عمله کی هست مجتهد هست مجتهد دیگه کار اضافه ای بر این انجام خوب حالا ببینیم قی... ارکان بله ارکان قیاس رو میخوریم ببینید ارکان لوادلوح ارکان القياس 4 اصل دو حکم اصل سبب الفرق 4 الا قياس 4 رکن داره خوب دقت داشته باشید قیاس 3 رکن داره یک اصل که بش میگه مقیس علیه در این مثال خودمون چی بود شراب انگور دو حکم اصل که در این مساله خودمون چی بود حرام بودن شراب انگور و حکم شرعیه الذي ورد به نسو فی الاسل اون حکمی که در اصل اومده که حرام بودن شرابه چیه؟ انگوره سه الفرع ویسمبه بالمقیس و همه لم یارد نسون بحکمه سه فرع فرعونی هست که در رابطه با حکمش نس نیومده است. که در این مثال خودمون بهش مقیس هم میگن هم بهش میگن مقیس هم که در این مثال خودمون چی هست؟ شرابه؟ جو مثلا؟ چهار علت همون وصفی هست که در اصل موجود هست همون وصفی است که حکم اصل به خاطر اون وصف بوده است خب حالا دقت کنید یکی رو میگن اصل یکی رو میگن حکم اصل یکی رو میگن فرع یکی رو میگن علت در این مثال خودمون به شراب انگور میگفتند اصل چرا چون برای این نص اومده در در احادیث نص اومده که آقا شراب انگور چیه؟ خوب حالا شراب آقا مثلا آناناس شراب نارگیل اغا چون شرابه فالمسکون هست خب ولی این اصل لیست این بهش میگن فرع شراب نارگیل بهش میگن چی فرع چون قیاسش گرفتیم بر چی انگول. بر انگور پس انگور رو میگن اصل حرام بودن شراب انگور رو میگن حکم اصل شراب نارگیلو میگن فرع یا همون مقیس و علت همون مسکنندگیه که در هر دوتا چیه؟ بله پس علت مسکنندگی هست چرا شراب انگور حر... شریعت حرام قرار داده؟ به علت مسکنندگی پس مسکننده بودن علت هست در این حکم آقا شراب انگور حرامه این اصل چون براش نسواره وجود رو داره حکمش اینه که حرامه علتش اینه که مسکننده هست اینی که ما اومدهیم شراب نارگیل و قیاس گرفتیم بر شراب انگور بهش میگن فرح این اینا رو میگن, رو میگن رکن قیاس باید شما این رو بدونی تا بتونی قیاس بگیری أمثلة القياس. هلا ان إن توزيه ردات مثالا يروز يكرم يقولي. ان توزيه ردات مثالا يروز يكرم يقولي كأن راه قياس ولا رصابة ممكنة تشمل خوب قياس القياس. على إبتيا أخيه أو خطبته على خطبة أخيه لا يجوز لورود النص بالنهي ذلك وهو وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الأخ المؤمن فلا يحل المؤمن أن على خطبة أخيه أو على بي أخيه حتى يرى وإلة الحكم هو ما في هذا التصرف أضاك من إعتداء على حق الغير وإذاء له وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء وإستئجار الإنسان على إستئجار أخيه واقية ما لا يريد نفس حكمها فتقاس على الواقية الأولى ليشتراكمها في إلة الحكم وتصوى بها في هذا الحكم وهو النهوان لقد أشترك ما مثال بصان إلى فوزين داك. در نس اومده است که زمانی که دو نفر میخواستن معامله بزنن تو دیگه نه روبو بده، اونجا بگی کاحق من میخوام بخرنش چون معاملهشون چی میشه؟ به هم میخوره یا کسی رفته بود جای برای خاصگاری تو دیگه نرو رو. چون اونجا چیشون به هم میخوره اینا جایز نیستن ولی برای اینا نهس اومده. برای اینا حدیث اومده. پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم گفت که مؤمن برادر مؤمن حلال نیست که اگر معامل رفته بود جای خواستگاری کرده بود این آقا بره اوج خواستگاری بکنه اگر رفته بود معامله‌ای بکنه این آقا بر سر معامله مو... رو مطرح بکنه مگر این که اون آقا از خواستگاری خودش دست کشید و رفت جای دیگه یا اینکه این آقا از معامله رو انجام نداد و رفت در این صورت که مشکلی نیست خب اینجا ببینید معامله زدن بر معامله برادر یا خواستگاری بر خاصگاری برادر این اصله براش نسوارد شده نه؟, نه؟ علت چه هست؟ خواهد. علت این که این دوتا جایز نیستن این که شما بر حق دیگری تعدی می کنی، داری ازیتش می کنید که و دشملی پیش میاد خب حالا در حدیث نیومده اگر کسی رفت که یه جای خونه ای رو اجاره بکنه شما دیگه حق نداری بری اونجا برای اجاره تو ممکنه به اون آقا نده و به تو بده مال اونا به هم میخوره ما قیاس می‌گیریم اجاره کردن و بر اجاره شخص دیگر بر همون معامله بر همون خاصگاری آه؟ چون اینجا همون علت هم هست اینجا هم همون علت پس این شد قیاس این شد که پس اجاره کردن قیاس گرفته میشه بر معامله مم. کردن بر معامله برادر متاجی شدید بحث قیاسو؟ پس همان طور که معامله کردن بر معامله برادر جایز نیست، اجار کردن بر اجاره برادر هم جایز. دلیلش چی؟ آقا قیاسی. چیه؟ لط مشترک. بله. اگر لط مشترک نباشه که نمیشه قیاس کرد. بله. مثالی دیگر علم وقت نداه لصلاة من يوم من منهي عن لورود الناس به هذا الحق وهو قوله هو تعالى يا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لُودِيَ لِصلاةِ من الجمعة فَسَعَوْا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيع وإلة الحكم هو ما في البائي من تعويق إلى الصلاة وإحتمال تفويتها وهذه الإلة موجودة في الاستجار أو الرهن أو النكاح في هذا الوقت فيكون الحكم هذه التصرفات النهي عنها قياساً على البائي دي قد اشتباشيت در ناس و مدعس كي در قرآن الكريم و مدعس كي زمان كي براي نماز جمعي أزان قفته شود موامل كردن وقت أزان ديگه حرام جي. ولی این اصلها صلب برای مسوار شده ها ده ده. علت حکم چی هست؟ چون اگر شما معامله کنید سبب میشه که برای نماز رفته نشه دیگه تو اینجا اومده فس اول الذکر الله مانع سعی میشه مانع رفتن به مسجد میشه خب همین علت در اجاره کردن هم موجوده آقا موقع اذان اومده که شما معامله نкуنید علت چیه موقع اذان برای جوبه گفته میشه دیگه معامله تر ترک کنید برید برای مسجد برای نماز جوبه علتش چیه؟ علت که از نماز عقب بیفتید خب حالا اگر یکی اومد همین موقع قرارداد اجاره بست اومد همین موقع اه اه رهن گذاشت برای رهن. اومد همین موقع برای نکاح آیا ممنوعه یا نه؟ میگیم چرا؟ میگیم همون علتی که معامله حرامه همون علت در این کارها هم چیه؟ موجوده پس اینا قیاس گرفته میشن بر چی؟ بر معامله قیاس گرفته میشن بر چی؟ حالا یکی معامله نمیشه نه آقا؟ بیل تو دست چی داره؟ برای چی میکنه؟ سیمان کاری میکنه؟ هر حرامه؟ بگیم چرا؟ نس اومده بگیم آقا نس اومده بر درسته برای معامله ولی علت چی بوده؟ علت بحث ترک نماز بوده علت بحث نرختنه به جمعه بوده همون علت در این کار هم چیه؟ باوجوده؟ بله چون یلت هر دو جا پس الان قیاس خوب بفهمید <متصفيق>